سباذ منزل جانان گذر دریغ مدا وضو به عاشق بی‌دل خبر دریغ مدا به شکران که شکفتی به کام بخت ای گل نسیم بس ز مرغ سحر دریغ مدا حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار جهان و هرچه دروح هست سهل و مختصر است زه احل معرفت این مختصر دریغ مدار کنون که چشمه قند است لعل نوشینت سخن بگوی و زه توتی شکر دریغ مدار مکارم تو به افاق می شاعر از او وظیفه وزاد سفر دریغ مدا چو ذکر خیر طلب می کنی سخن این است که در بهای سخن سیموزر دریغ مدا قبار غم برود حال خوش شود حافظ تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدا